بسم الله الرحمن الرحیم به اندازه مهربان نهایت بارشد تاسیمین این آیات کتابیست که حق را آشکار می سازد شاید تو از پیشان خود را از شرت اندوه هلاک گردانی به اینکه که چرا مسلمان نمی شود. اگر بخواهیم از آسمان بر ایشان نشانه فرود می آریم که در برابر آن خم خمدند هیچ پندی جدیدی نیست که از جانب پروردگار رحمان بر ایشان بیاید مگر آنکه از آن رو بر ایشان واقعا پیام حق را تکذیب کردند ولی با ایشان در مورد آنچه با آن استعظامی کردند به زودی آگاهی لازم خواهد آمد آیا زمین ندیدند؟ کی چی تعداد از هر جنس مفیدی را در آن جمیدیم؟ بگمان در این نشانه است، اما اکثرشان مسلمان نبودند. فقا که پروردگار تو هم او صاحب قدرت مونی و مهربان، و بیادار هنگام را که پروردگار تو به موسان داداد که برو پیش قوم ستمگار، قوم فرعان، آیا ایشان و سلطان نمی ترسند؟ موزه گفت ای پروردگار من واقعا می ترسم از اینکه مرا تکذیب کند وسینۀ من تنگ می شود و زبانم روان نیست یعنی بندش دارد پس به هارون نیز رسالت بخش و افزون بر آن ایشان بر من ادعای جرمی دارند که میترسم ترسم مرا بکشد خداوند گفت چنین نیست آنها با به شما اسیبی رسانیده نمی توانند پس هر دوی شما با نشانه های ما بیروید بیگمان که ما با شماییم و شنوینده این جیانات می باشیم شما هر دو نفر نزد فرعون بروید و بگویید ما فرستاده پروردگار عالمیانیم که با ما اسرائیل را بفرست فرعون گفت آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش نکردیم و تو سالیان درازی از عمر خود را در میانی ما نگذراندی؟ و آن کرده خود را انجام دادی و تو از ناسپاساند موسی گفت من این کار را در حال ناخبه کردم از پیش شما گریختم چون از شما ترسیدم در این دوره بود که پروردگارم به من قدرت برشید پروردگار من مرا از پیام بران کردنی. و آیا این نعمت است که آن را بر من منت می گذاری که بنی اسرائیل را فرده ساختید؟ فران گفت چیست پروردگار عالمیم؟ موسا گفت پروردگار آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست اگر اهلی یقینید فرعون و کسانی دور و بر خود گفت آیا نمی شنوید؟ گفت پروردگار شما و پروردگار ناصل پیشینی شما فرعون گفت یکینا پیانبر شما آنکه سوی شما فرستاده شده دیوانه است موسا گفت پروردگار مشرق و مغرب و هر آنچه در بین این دوست اگر احطم دارید فرام گفت اگر جز من معبودی بیگیری تو را از زندانیان خواهد شد. موسا گفت آیا حتی اگر به تو نشانه روشنی بیاورد؟ فرام گفت اگر راست میگویی بی آن را بیاور. در این حال موسا عصای خود را افگاند و ناگهان آن عصا به بنی اشکار شد و باز دست خود را از گریبان کشید ناگهان برای بینندگان ستیگ درخشنده می نمود فران با بزرگان دور و پیش خود گفت این شخص واکن جادوگری داناست می خواهد شما را با سهرش از سرزمین شما بیرون سازد پس مشوره شما چیست؟ گفتند او و برادرشا محلت و به شهرها کسانی را بفرست که مردم را جمع آوری کنند و از میان ایشان ساهران ماهر را برای تو بیاورد و این ترتیب ساهران با همان روزی مشخص جمع آوری شدند و به مردم گفته شد آیا شما نیز در این اجتماع اشتراک می کنید تا با که ما ساهران را پیروی کنیم اگر پیروی شود چون ساهران آمدند و سران گفتند آیا برای ما فازاش مناسب دادن می شود اگر ما برنده شویم؟ فرعون گفت بلی و در چنین حالتی از مقربان خواهید بود موسی به ساهران گفت بیافکنید را که می خواهید بیافکنید در این حال صاحران ریسمانها و عصیهای خود را افکندند و گفتند به عزت فرعون ما یقینا پیروز بی می سپس موسی عصای خود را افکند و همان دم هر آنچه تذویر کرده بودند همرا به کام خود فروخت. ساهران به اختیار اخیار سجده افتادن و گفتند ما به پروردگار عالمیان همان من پروردگار موسا و خارون ایمان آوردیم فران گفت آیا به او ایمان آوردید پیش از اینکه من برای شما اجازه بدهم یقینا او سرکرده شماست که به شما سهر امو اما با زودی به سرنوشت خود پی خواهید بود به یقین دست و پاهای شما را از طرف مخالف قطع می کنم و بیگمان همه شما را بدار می کشم گفتن باکی نیست چون بیگمان ما به سوی پروردگار خیش بازگشتنی هستیم تواقع داریم پروردگار ما خطاهای ما را بیاموزد چون ما نخستین کسانی هستیم که ایمان آوردیم و به موسا وحیه کردیم که بندگان ما را گاه از مصر ببرد و یقینا شما را می شود آنگاه فرعون و همه شهرها کسانی را پرستاد تا مردم را جمع کنند و به ایشان بیگوین اینها یعنی بنی اسرائیل بروه اندک و پراغندهی و بیگوان ایشان ما را شدید خوشناک ساردند و ما همه مسلح و آماده پیکاریم پس ایشان را از باغها و چشمسارها خارج گرده میده. و نیز از گنجها و مقام و منزل گرامیه آره این چنین و اقبل اسرائیل اینها را میراست دادید مشرکین. مشرقین و این ترتیب ایشان را در هنگام طلوع آفتاب تعقیب کردند. شون این دو گروه یک را دیدن یارانیون شاک رفتن واقعا که ما دستگیر شدگانی قال کنلا انما یعبی سیادی موسا گفت هرگیز می واقعا من با من است او به زودی مرا رحیب می سازد در این حال به موسی وحی کردیم که اصایت را به دریا بزد پس دریا شخ شد و هر قسمت آن مانند کوهی نهایت بزرگ گردیم گروه دیگر را در آنجا نزدیک آوردیم موسا و همه آنانی را که با او بودن نجات ردیم سپس دیگران را بحق کردیم در این رویداد نشانه است اما اکثر ایشان ایمان نیامد و بگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت مونی و مهربان و بر ایشان خبر ابراهیم را بخوان چون با پدر خیش و قوم خیش گفت چی چیز را می پرستی گفتند بوتان را می و بخدمت آنها مجاوره گفت آیا این بوتان از شما می شنوند هنگامی که به آنها نیایش می کنید یا آیا به شما سودی یا زیانی می رساند گفتن نه بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می کردن گفت آیا ندیدید آنچه را شما و پدران و پیشیان یعنی شما می پرستیدید آنها همه با من دشمنند مگر پروردگار عالمیان آنکه مرا آفرید و باز مرا رهیاب می گرداند آنکه مرا غذا می دهد و آب می دهد و هنگامی که مریض شوم او مرا شفا می دهد و آنکه مرا می و باز مرا زنده می گرداند آنکه امیدوارم خطاهای مرا در روز جزا بیاورزد پروردگار بر من حکمت ارزانی کن و مرا بر صالحان پیوست گردان برای من در امتهای آینده ذکر خیر را قرار دی مرا از وارثان به سرشار از نیمت ها بگردم بدرم را بیاموز بگمان او از گمراهان بود و مرا در روزی که آدمیان بر برانگیخته می شوند رسوان بکن روزی که سروعت و فرزندان سود نمی بخشند جز آن کسی که به حضور خداوند با قلب سلیم بیاید در آن روزی که برای پرهیزگاران به نزدیک می شود و دوزخ برای گمراهان ظاهر می شود و به ایشان یعنی مشکان گفته شود کجاست آنچرا می پرستیدید جز خدا آیا این معبودان شما شما را کمک کرده میتوانند؟ یا در حد اعقل از خود کرده می توانند به این ترتیب اینها یعنی معبودان باطل و پیروان گمراه در آن نیگونسار می شوند و همه لشكریان ابلیس ای نیست ایشان در آنجا در حالی که به مخاصمه می خطاب به با معبودان باطل خیش می به خدا که ما در گمراهی آشکاری بودیم که شما را با پروردگار عالمیان برابر می داشتیم و ما را جز مجرمان کسی گمراه نکرد اکنون ما کسانی را نداریم که از ما شفاعت کنند و نه هم دوست گرم لعنی مهربان اگر برای ما بازگشتی به دنیا باشد از مؤمنان می باشد. بگمان بیگمان در این رویداد نشانه است ولی بیشتری ایشان مؤمن نیستند حقا که پروردگاری تو هم اوست صاحب قدرت منیم و امیت ربا قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند چون برادرشان نوح برایشان گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ بیگمان من برای شما پیامبری امین هستم باره از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید از شما بر این تبلیغ خیش پاداش نمی جویم نیست پاداشم مگر برپروردگار آلمیان لذا از خدا بترسید و مرا ادمرت کنید گفتند آیا ما به تو ایمان آوریم؟ در حالی که پسترین مردم تو را خیره کرده اند نوح گفت آیا چی می دانند که ایشان چی اعمال داشتند نیست حسابشان مگر برپروردگار من اگر شغور داشته باشه من مؤمنان را از پیش خود نمی رانم. من نیستم مگر این دهنده ای آشکار گفتند ای نوح اگر تو از این دعوت خیش دست بردار نشوی از جمعه سنگسار شدگان خواهی شد نوح گفت ای پروردگار من برای از که قوم من مرا تکذیب کرده پس تو در میان من و میان ایشان به دونه ای آشکار فیصله کن و مرا و اممینان را که با من هستند، نجاز بدی. پس ما او و همراهانش را در کشتی مملو از انسان و انواع حیوانات نجات دادیم سپس بکیه را بعدن غرق ساختیم بیگمان در این نشانه است اما اکثر ایشان مؤمن نبودند و بیگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منی و مهربان قوم آد پیانبران را تکذیب کردند چون برادر ایشان رود گفت آیا شما از خدا نمی ترسید من برای شما پیامبری امانتکاری هم. لذا از خدا بترسید و را اطاعت کنید از شما برای این تبلیغ خویش پاداشی نمی جویم نیست پاداشم مگر بر پروردگار عالمیان آیا در هر جای بلندی از روی بلهوسی نشانۀی آباد می کنید و برای خود های مستحکمی می سازید تا مگر جودانه بمانید و چون کسی را گیر کنید ستمگارانا دستگیر می کنید؟ از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و از ذاتی بترسید که شما را به چیزهایی که می دانید امداد کرده است شما را به چارفایان و نیز و فرزندان برومند امداد کرده است همچنین به باغها و چشمه ها براستی من بر شما از عذاب روز بزرگ می ترسد گفتن برای ما یک است خواه ما را پندهی یا از پندهندگان نباشی نیز این جز همان بشی پیشیان و ما نکنوب و ما مجازات نخواهیم شد به این ترتیب او را تکذیب کردم پس ما ایشان را هلاک ساختیم بیگمان در این نشانه است مگر بیشتر ایشان ایوان ندارد و بیگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منی و مهربان قوم سمود پیانبران را تکذیب کردن چون برادرشان صالح برایشان گفت آیا شما از خداوند نمی ترسید؟ حقا که من برای شما پیامبری امانتکاری هستم لذا از خدا بترسید و مرا را اطاعت کنید از شما بر این تبلیغ و شما فاداش نمی جویم و من صرف برپروردگار عالمیان است آیا شما در لذت جوی از نعمتهای اینجا ای، این گذاشته می شدید در این باغها و چشمها و این کشتها و هایی که میوی نوبر آن نازد و شاداب است و شما از کوه ها خانه ها میتراشید و در آن به عشرت میگذرانید لذا از خدا بتسید و مرا را اطاعت کنید و فرمان مصففان را افعاد نکنید آنانی که در زمین فساد میکنند و اصلاح اون گفتند واقعا تو از جادو کرد شدگانی تو نیستی جز بشر مثل ما. اگر راست میبویی پس برای ما نشانه بیاورد آورد گفت ای که آوردن این ماده اشتر است که برای او از نهر این قریه حقابه است و برای شما نیز حقابه در روز معین با او آزاری نرسانید ورنه شما را عذاب روز بزرگ شروع میگید اما ایشان ماده اشتر را پی کردند و بعدا از کرده خیش پشیمان شدند پس عذاب الهی ایشان را شروع حقا که در این نشانه است اما اکثر ایشان مؤمن نبودند. و بیگمان پروردگارت هم او صاحب قدرت منعی و امن قوم لوت پیامبران را تکذیب کردند. وقتی که برادرشان لوت به ایشان گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ بگمان من برای شما امانت امانتکاری هستم. لذا از خدا بی و مرا ادمت کنید. از شما بر این تبلیغ خیش پاداشی نمی جویم. پاداش من صرف بر پروردگار عالمی هست. آیا از همه جهانیان و مردان پیش می شوید؟ و آنانی را که خداوان برای شما با حیث جفت یعنی همسر فریده است میگذارید بلکه شما قوم تجاوزگر می باشید. گفتند ای لود اگر تو بس نکنی یقینا از اخراج شدگان خواهی بود. گفت من از این عمل شما از نفرت دارندگان. بروار من و خانواده را از این عملی که ایشان انجام میدهند نجات بدید. پس ما او را و خانواده او همگی را نجات دادیم جز زنی را که در میان باکی ماندگان بود سپس دیگران را حلاک کردیم و بر ایشان بارانی را از سنچل بارانی دیم. پس چی بد است بارانی بیم داده شدگان بیگمان در این رویداد نشانه است مگر اکثر ایشان مؤمن نبودند و بیگمان فروردگار تو هم اوست صاحب قدرت مونی و مهربان اصحاب عیته پیانبران را تکذیب کردن وقتی که شعیب به ایشان گفت آیا شما از خدا نمی من برای شما پنبری امانتکاری هستم لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید بر این تبلیغ خیش از شما پاداشی نمی جوید. پاداش من صرف بر پروردیگار عالمیان است پیمانه را کامل بدهید و از آنهای ما که مردم را خسارمند نیسازند و با ترازوهای صحیح و ازم کنید و با مردم اموالشان را کم ندیدید و در زمین فساد کنان به تبهکاری دست میازید و ارزاتی که شما و ناصلهای پیشین را آفریده بترسید گفتند تو صرف از جادو شدگانید و نیستی تو جز بشر مانند ما و یکینا میپنداریم که تو از دروغ پس اگر از راستویان هستی پاره از آسمان را برما بینده است گفت پروردگار من به آنچه می کنید آگاه تر است و این ترتیب او را تکذیب کردند پس عذاب روز عبر افغان افگن ایشان را فرا بیگمان که آن عذاب روزی بزرگی بود که در این نشانه است ولی بیشترشان ایمان نیاوردند و بیگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منی و بهربان و حقا که این قرآن فروداورده پروردگار عالمیان است آن را روح الامین فروداورده است دل تو تا از پندهندگان هندگان باشی به زبان عربی واضح بگمان این امر در کتاب پیشیان نیز آمده است آیا این خود نشانه برای ایشان نیست که علماء بنی اسرائیل حقانیت آن را می دانند اگر ما آن را به برخی از عجمیان نازل می کردیم و اگر آن را بر ایشان میخوان خوان به آن ایمان نمی آوردند به این ترتیب ما آن را در دلهای گنهکاران در آوردیم به آن ایمان نمی آوردند تا آنکه عذاب در ناک را بی اما عذاب بر ایشان ناگهان نیاید در حالی که هیچ توجهی به آن ندارند در این حالت است که می آیا ما محلت داده می آیا به عذاب کردن ما شتاب می آیا دیدی اگر ایشان را سالها زندگی به ور گردانیم بعد از آن همان عذابی که به ایشان وعده داده شده به ایشان بیاید همه چیزهایی که از آن بهره حور بودند ایشان را از این عذاب بیا سختن نمی تواند هرگز ما اهل سرزمین را حلاف نکردیم مگر اینکه برای آنها اختار دهندگانی بوده است تا مگر پنگ و ما هرگز سیزنگر نبودیم شیاطین این قرآن را فرود نیاوردند. نه به ایشان شایسته است و نه هم می توانند که چنین قرآنی به وجود آورد واقعا ایشان از آن یعنی اخبار آسمان ها برکنار شده. پس هیچ معبودی را با خدا نیایش مکن ورنه از اعذاب شدگان خواهی بود و خیل شاوندان نزدیکت را بیم بده و بال خود را برای مؤمنانی که ترا پیروی می کنند اگر تو را نافرمانی کنند پس بگو بگمان من از آن شما انجام می دهید بیزار و بر خداوند صاحب قدرت منی و مهربان توکل کن آن که تو را وقتی که برای عبادت برمیخیزی میبیند، و نیز حرکات تو را در میان سجده کنندگان حقا که هم اوست شنوا و دانا آیا شما را با خبر کنم که شیاطین بر کی فرود می بر هر دروگوی گناهکاری فرود می آین. گوش میگیرند و آنچه را شنیده اند به دوستان خود میرسانند و بیشترشان دروگو هستند پیانبر شاعر نیست شعرها کسانی اند که گمراهان ایشان را فرید میکنند. آیا ندیدی که ایشان در هر از سخن سرگردان می شوند. و ایشان چیزی را میگویند که که آن عمل نمی کنند با جد آنانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام دادند و خدا را بسیار یاد کردند و چون مظلوم واقع شدند از خود دفاع کردند ستمکاران به زودی پی می که به چه سرنوشتی دوچان میشو